فصل دوم پیرزن خندهی گوش خراش سر می دهد و به تو می گوید که چقدر از لطفت سپاسگزار است و می گوید که آن دختر تو را به اتاقت راهنمایی خواهد کرد در فکر دستمزد چهار هزار پسویی هستی و اینکه که کارت چقدر دلپذیر خواهد بود. آخر اینجور کارهای پژوهشی دقیق را دوست داری کارهای بی نیاز از تقلا و دوندگی یا ملاقات کسانی که حوصلشان را نداری با این فکرها در پی دختر از اتاق بیرون می روی و در میابی که باید او را با گوش دنبال کنی نه با چشم از پی خشخش دامنش می روی خشخش تافته و حالا آرام و قرار نداری که بار دیگر در چشمانش بنگری به دنبال آن صدا در تاریکی از پله ها بالا می روی و هنوز به تیرگی خونهکرد ای بیاد میاری که ساعت در حدود شش بعد از ظهر است و از حجوم نور تعجب میکن آنگاه که آورا در اتاقت را باز می بانه. در دیگری بدون قفل و کنار می رود و میگوید این اتاق شماست یک ساعت دیگر برای شام منتظرتان هستیم با همان خشخش نرم تافته می گذرد و نمی توانی دیگر بار چهره اش را ببینی در را میبندی و به شبکه شیشهی بالای سر که به جای سقف است می نگری. از اینکه می‌بینی نور شبانگاهی در قیاس با ظلمت دیگر قسمتهای خانه کور کننده است لبخند میزنی و باز وقتی که توشک تخت فلزی مطللا را میازمایی لبخند میزنی آنگاه نگاهی به گرداگرد و اتاق میاندازی قالیچه پشمین قرمز، کاغ دیواری زیتونی و طلایی، صندلی راحتی با روکش مخمل سرخ میز تحریری قدیمی از چوب گردو با روکش چرمین سبز لامپای روی میز با پرتوی ملایم برای مطالعه شبانت و قفسه کتابی کنار میز در دست رسد به سمت در دیگر می روی و چون آن را به فشاری باز می کنی همامی به سبک قدیمی می آبی وانی چهار پایه با های ریز که بر لعاب چینی نقش شده است دستشویی با کاسه آبی رنگ آبریزی به سبک قدیمی در راه را چسبیده به حمام خودت را توی آینه بزرگ و بیزی شکل گنجهی لباس آن هم از چوب گردو تماشا می کنی. پرپشت و لبان فراخ و برجستت را می جنبانی و نفست آینه را کدر می کند. چشمان سیاحت را می و چون چشم باز می کنی آینه پاک شده است. نفس رها می و دست بر موی سیاه و نرمت می کشید. بر نیمرخ موضون و گونه های لاغرت دست میگذاری آنگاه که نفس های دیگر بار را پنهان میکند، نام او را تکرار میکنی. کنی آورا دراز کشیده بر تخت دو سیگار دود میکنی. پس بر می خیزی کت می و مویت را شانه میزنی در را باز می کنی و می راهی را که از پی او ای به یاداری داری. می میخوای در را باز بگذاری تا نور لامپا راه نمایت باشد اما این نشدنی است. زیرا در با فشار فنرها پشت سرت بسته می شود می توانستید با این در بازی کنی گاه به جلو گاه به عقب برانیش. این کار را نمی کنی این خانه همواره در تاریکی خواهد ماند و تو باید با دست سودن راه و چاه آن را بیابی و باز بیابی کورمال کورمال با دستهایی به تمامی گشاده راه خود را از کنار دیوار می آبی و به تصادف کلید برق را میزنی و در میانه روشن آن تالار دراز خالی پلک بر هم میزنی در انتهای آن نرده ها و پلکان مارپیچ را میبینی پایین که می روی پله ها را میشماری کاری دیگر که در خانه خانم یورنته باید با آن خوب کنی چشمان سرخگون خرگوش را میبینی که پشت به تو می کند و جس زنان دور می شود پلهی به عقب برمیگردی فرصت آن نداری که در راهرو پایین درنگ کنی چرا که آورا شمدان به دست کنار در نیمه باز با شیشه های رنگین به انتظارت ایستاده لبخند زنان به سویش میروی اما چون جیغ دردناک چند گربه را میشنوی میستی آری کنار آورا میستی و گوش تیز میکنی تا مطمئن شوی صدا صدای گربه است و آنگاه از پی او به مهمان خانه مهمانخانه میروی آورا میگوید صدای گربه هاست این قسمت شهر پر از موش است از مهمانخانه رد میشوی. مبلهایی با روکش ابریشمی رنگ باخته گنجه با در شیشهی حاوی مجسمه های کوچک چینی ساعت آهنگنواز، آهنگ گویهای نشان ها گوی های بلورین قالی های با نقش ایرانی تابلوهایی با مناظر روستایی پرده های مخملین سبز آورا جامعه سبز پوشیده اتاقتان راحت هست؟ بله اما من باید وسایلم را از جایی که احتیاجی نیست پیشخدمت رفته تا بیاردشم نباید مزاهم شما می شدم. از پی او به اتاق نهارخوری می روی آورا شمدان را وسط میز می گذارد. اتاق نمناک و سرد می نماید چهار دیوار پوشیده از چوب تیر است که به سبک گوتیک کنده کاری شده با گوزهای منبت کاری شده و گلو بوته درشت چون می نشینی می بینی که میز را برای چهار نفر چیدند. دو دیس بزرگ سرپوشیده و بطری کهنه قبار گرفته بر سر میز است. آورا سرپوش یکی از ها را بر می دارد. بوی تند جگر و پیاز را که او در بشخابت می کشد فرو می دهی و آنگاه بطری کهنه را بر می داری و دو جام بلور تراشدار را از آن مایه قلیز سرخ پر می کند. از سر کنشکاوی میکوشی برچسب بطری شراب را بخانی اما قوار آن را محو کرده آورا از دیس دیگر چند گوجه فرنگی کبابی در بشقابت میگذارد به دو جای اضافی دو صندلی خالی می و می ببخشید منتظر کسی دیگری هستید آورا همچنان سرگرم گذاشتن گوجه فرنگی در بشقاب است. نه خانم کنسولو امشب کمی ناخوش هستند با ما شام نمیخورند خانم کنسوللو اماتان؟ بله او مایل از بعد از شام شما را ببیند در سکوت غذا می خوری. شراب قلیز را می نوشی و گهگاه نگاهی به این سویان سوی می اندازی. تا آورا نگاه های افزون شده بی اختیارارت را ندیند. دوست داری خطوط سیمای این دختر را در ذهن ثبت کنی. هر بار که نگاه از او برمیگردانی فراموششان می‌کنی و نیروی تابناپذیر ناپذیر وامی داردت که دیگر بار بنگریش او همچون همیشه چشم به زیر دارد وقتی که در جیب کت به دنبال بسته سیگار می‌گردی دستت به کلید بزرگی می‌خورد بیاد یاد می‌آری یا به آورا گویی، آه فراموش کرده بودم که یکی از کشوهای میزم قفل است کاغزهایم آنجاست. و او زمزمه می‌کند پس می بیرون بروید؟ این را گلایه وار می گوید. خود را می بازی و دستت را با کلید آویخته از یک انگشت دراز می کنید. کاری ندارد، پیشخدمت خدمت می تواند فردا برود بیاردشان. اما او از تماس دستت می و همچنان دست در دامن خود دارد. سرانجام سرش را بلند می کند و تو دیگر بار در حواس خود تردید می کنی. گیجی خود، سرگیجه ای را که آن چشمان سبز روشن و درخشان است به پای شراب می گذاری و چون آورا بر می خیزد، بر می خیزی و دست بر پشتی چوبین صندلی گوتیک می گذاری. دل آن نداری که دست بر شانه اوریان یا سر بی حرکتش بگذاری. می بر خود مسلط شوی و چشم از او بگردانی. با گوش سپردن به جنبش نامحسوس در پشت سرت که لابد به با آشپزخانه باز می شود، یا با جدا کردن دو انصر سازنده فضای اتاق دایره متراکمی از نور بر گرد شهمدان که میز و یک دیوار کندکاری شده را روشن می کند و دایره تاریک بزرگی گرد بر گردان سرانجام آن میابی که برخیزی به سویش بروی دستش را بگیری و حلقه کلید را همچون یاد بودی در پنجه نرمش بگذاری پنجهش را میبندد به تو مینگد و زمزمه می کند متشکرم آنگاه برمیخیزد و شتابان از اتاق بیرون می روید. بر صندلی آو را مینشنی می‌کنی، راز می کنی. سیگاری آتش میزنی و لذتی احساس می کنی که پیش از این در نیافته ای. لذتی که میدانستی بخشی از توست، اما تنها اکنون آن را به تمامی در می رهایش می کنی، آشکارش می کنی. چرا که این بار می پاسخی خواهد یافت، گم نخواهد شغل، و آارا گفته که خانم کنسولو منتظر توست، بعد از شام منتظر توست. اتاق نهار خوری را ترک می کنی و شمدان در دست از مهمان و راه رو نخستین دری که می در اتاق اوست، با پشت انگشت به در میکوبی اما پاسخی نمی آید دوباره می کوبی. پس در را به فشاری باز میکنی چرا که او به انتظار توست با نوک پا وارد می شوی و زمزمه میکنی خانم خانم صدایت را نمی شنود چرا که در برابر دیوار پوشیده از اشیای مذهبی زانو زده است سر بر مشت های بسته تکیه داده از دور می بینیشت آنجا در لباس خواب پشمی خشن زانو زده، سرش در شانه باریک فرو رفته، لاغر است. حتی بیزرهی گوشت، همچون تندیسی از قرون وستا، پایش چون دو چوب خوشک، ملتهب از باد سرخ. در فکر سایش مدام آن پشمی خشن با پوست او هستی که ناگاه مشتهایش را بلند می کند و به ناتوانی در هوا می جنباند. گویی با تصویری در نبرد است که تو چون با نوک پا نزدیک می شوی باز می مسیح، باکره، قدیس سباستین، قدیس لوسیا، ملک مقرب میکائیل و شیاطینی نیشخند بر لب بر پرده باسمه قدیمی تنها چهره شاد در این شمایل های اندوه و خشم شاد از آن روی که چنگال در گوش دوزخیان فرو کردند دیگ آب جوشان بر ایشان میریزند، به زنان تجاوز میکنند، مست میشوند، از همه آزادی که بر قدیسان حرامه است بهره میجویند به تصویر میانی نزدیک می شوی که محصور است در عشقهای بانوی قمگین ما خون خداوندگار مسلوب ما شادمانی شیطان خشم ملک مقرب اندرونهی محفوظ در شیشه الکل قلب نقرهی خانم کنسولو زانو زده آنان را با مش تهدید می کند و بریده بریده کلماتی بر زبان می که چون نزدیکتر می شوی می فرار از ای شهر خدا ای سروش در شیپورت بدم آه تا دنیا بمیرد چقدر طول میکشد چندان بر سینهش میکوبد که با حمله صرفه برابر شمایلها و شمعها فرو میغلدد آرنج هایش را میگیری و بلندش میکنی و چون آرام آرام به تختش میرسانی از جسه کوچکی او در شگفت میشوی گویی دخته خورد سال است خمیده کم و بیش دوتا شده در میابی که بی کمک تو میبایست خود را چهار دست و پا به تخت میرسند کمک می تا تا بران تخت عریز با خرده های نان و بالش های کهنه بخوابد رویش را میپوشانی و به انتظار میمانی تا نفسش حالت طبیعی بگیرد و در این دم اشکی بی اختیار از گونه های خوشگیدهش فرو می ریزد ببخشید ببخشید آقای منت رو برای پیر زنها چیزی نمی مگر لذت عبادت لطفا دستمالم را بدهید خانم آورا گفت که بله البته من نمیخوام وقت تلف کنم باید تا آنجا که ممکن است زودتر شروع کنیم متشکرم. شما باید استراحت کنید متشکرم. بگیرید پیرزن دست به یقهش میبرد دگمش را باز می کند و سر فرو می‌افکند تا نوار ارقوانی رنگ باخته‌ای را بیرون بکشد و به تو بدهد نوار سنگین است زیرا کلیدی مسین از آن آویخته است آن گوشه چمدان را باز کنید کاغذ های سمت راست را که رویش کاغذ های دیگر است اینجا بیارید دورش نوار زرد بسته من خوب نمی بینم ها بله مسئله این است که من به تاریکی عادت کردم دورمان دیوار کشیدند آقای منت رو چهار طرف من را ساختمان بالا بردند و جلو نور را گرفتند سعی کردند مرا وادار به فروش کنند اما تا زنده ام نمی فروشم این خانه برای ما پر از خاطره است مگر مردم را از اینجا بیرون ببرند بله همین است متشکرم می توانید مطالعه این رسمت را شروع کنید قسمت های دیگر را بعد می دهم شب بخیر خیر آقای منترون متشکرم آه ببینید شم خاموش شده لطفاً بیرون اتاق روشن کنیدش نه نه کلید پیشتان باشد به شما اطمینان دارم خانم آن گوشی یک لانه موش هست موش من هیچ وقت به آن گوشه نمی روم. بیتر از گربه ها را به اینجا بیارید گربه ها؟ چه گربه ای؟ شب بخیر میخواهم بخوابم. خیلی خستم شب بخیر